بسم الله الرحمن الرحیم بنامه خداوند بخشنده محبان قل بو الله احد بگو او خدای یکتا الله صمد او خدای بینیاز است لم یلد و لم یولد نا و نا همتاده شده است وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدًا با پراوی او هرگز شبیه